بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الحادي عشر فصل يصدحون الدليل الحادي عشر الاستصحاب دليل يصدحه مرتين استصحاب هذا صدبي تعريفه تعريف استصحاب الاستصحاب في اللغة طلب المصاحبة واستمرارها بيجي استصحاب در لغات يا معنى لغوي استصحاب هم طلب همراهی کردن و استمرار آن بی باشد طلب همراهی طلب صحبت همراهی وفی الاسطلاح استدامت اثبات ما كان ثابتا او نفی ما كان منفیا در استلاح استساب يعني استدامت دوامه سبوت آنچه که ثابت بوده است یا دوام نفی آنچه که منفی بوده است خب اگر چیزی از قبل ثابت بوده میگه دوام داشته باشه اگر هم نبوده این نبودنش داشته باشه؟ دوام داشته باشد مثال میزنه خودش و على هذا من اشتره کلبن على من کلاب البولیس أو اشتراه على أنه كلب صيد فادعى فوات الوصف فالقول قوله إلا إذا ثبت خلافه استصحابا للعدم السابق لأن الأصل عدم هذا الوصف برئين أساس يعني تبقى تعريف استصحاب هركسي خريد سجيرو برئين أي يا برئين چیز که اون سگ سگ پولیسه ها؟ سگ یک تشخیص میده آموزش دیده. یا خرید اونو که سگ شکارچی هست و اون خریدار اومد ادعا کرد که اون وصف مذکور رو الان نداره اومد ادعا کرد این سگی که من به انوان سگ پلیس یا سگ شکاری خریدم سگ پلیس نیست سگ شکاری نیست بگه اجرای سخنش پذیرفته میشه یا نه یعنی بگه بله فالقول قوله قوله قول خریدار ال هذا شریف پذیرفته میشه چرا به خاطر استصحاب ادب سابق اصل بر اینکه که آموزش دیدنی نیستند اصل بر اینه که این وصفی که ذکر شد این و اوصاف رو خب استصحاب بنافع که اینجا جا بنافع مین آغا که این صفتو نداره و اصلا برامین کساگها این صفتو بالی انواع الاستصحاب انواع و استصحاب انواعی داره برای هر کدومش دوباره بسال بیاره و که کافی هستن شماره 125 انواع الاستصحاب الاستصحاب استصحاب و حکم الاباحت الاصلیت للاشیا یک استصحاب حکم مباحبودن اصل برای اشیا یعنی اصل برای اینه که اشیا چیاند مباحن پس استصحاب اینو بگه که مباحن مگر اینکه دلیلی دلیلیست ما دلیل ثابت بشه یه چیزی که مباح نیست پس است استصحاب حكمه بمحبودة الأصلية براية أشيا دو ثانيا استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي دو استصحاب براءة اصل أصل برينة كذمة إنسانية إنسان بريء حق برش ليس الإنسان غير مشغولة بحق ما إلا إذا قام الدليل على ذلك فمن ادعى على على آخر حقا فعلیه فعلیه اثبات لان الاصل في المدعى عليه البراءه من المدعا به دقت کنید میگه ذمه انسان غیر مشغول هست به هر حقی که باشه غیر مشغوله مگر زمانی که دلیلی دلالت بر اون بکنه پس در نتیجه اگر اومد کسی ادعا کرد حقی رو بر شخصی دیگر خب oh. اینجا باید بیاد ثابت بکنه چون اصل بر این است که ذمه آدمی چه است؟ بری هست اصل, اصل بر این است که ذمه انسان چه است؟ بری هست اگر اومد ادعای حقی برگردن کسی کرد باید چکار بکنه باید ثابت بکنه باید چکار بکنه زیرا اصل در مدعا علیه مراعت هست از اون چیزی از مدعا به از اون چیزی که برش مدعاه شده این آقا دزه ها ادعای دوزی برش شده ادعای فلان چیز برش شده ادعای فلان تیز. از اون مدعاه به گردن مدعاه علیه چیه بله مدعی باید ثابت میکنه. اگر مدعی اومد ادعای رو بر علیه مدعاه علیه کرد باید, باید اون مدعاه به رو چیکار بکنه ثابتش بکنه پس استصحابه حكم إباحية أصلي براش أشياء استصحاب براءته أصلي ثالثا استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يقوب الدليل على خلافه فمن ثبت ملكيته لإقرار أو منقول تبقى هذه الملكية ونحكم بها إلا إذا قام الدليل على زوالها كأيبيعه أو يقفه استصحاب وصفی هست که ثابت میکنه حکم چی رو؟ شرعی رو میگه تا زمانی که دلیلی بیاد و برخلاف اون حکم شرعی که ثابت هست من خلافش دليل يبيات. بس نوع السفوم استصحابه وصفي كه حكم شرير وتشكر ميكونات. صابت ميكوني. بصال ميسي. فمن ثبتت ملكيته لإقرار أو ما نقوله. تبقى هذه الملكية ونحكم بها. بجيب. بس حركسي كه ملكيتهش برايك صاختماني. یا برايك شيء زين. منقولی ثابت شد این ملکیت برای این آقا چی هست این وصف برای این آقا ثابته حکم شرعی رو برای این آقا کار میکنه ثابت میکنه مگر اینکه که دلیلی بیاد و بگوید که این ملکیت ازش دیگه زائل شده از بین رفته به چه شکل اومده و اینو چکار کرده فروخته یا وقفش کرده یا اونو بخشیده همش کرده پس نوع استفامش استصحاب وصفی هست که ثابت میکند حکمی شرعی رو اگر وصفی مانند ملکیت مانند چه؟ اومد ثابت بود که صاحب این ساختمان این آقا هست خب میگه پس مال آقا هست ما گرید که دلیلی بیاد و خلافش رو چکار بکنه؟ ثابت بکنه. که مثلا این رو الان این ملکیت از بین رفته. او بده این رو فروخته باشه. این رو وقف کرده باشه یا این رو به کسی دیگه بخشیده باشه. خب پس نوع سومش به زبان ساده این است که اگر یک وصفی برای کسی حکم شرعی رو برای شخصی ثابت کرد ما میگیم برای این دیگه ثابت براية الآغة شيء صابت مگر يكبر خلافش صابت جوان خوب صد و حجية الاستصحاب در شماره صد و بيس بياد حجية استصحابو بحث آية استصحاب بحث میکنك آیا استصحاب حجت هست یا حجت نیست الاستصحاب اند الحنفیه ومن وافقهم خجتون بیفرماید استصحاب نزد حنفیه و نزد آنهایی که نظرشون موافق با حنفیه هست خجت هست مطلقاً نه لعبقاء ماکان على ماکان خجت هست برای باقی گذاشتن هر چیزی که بوده است بر همون قبلیش مثال میزنه و واضح میکنه بی بیگه استصحاب نزد حنفیه البته تمام احناف نه استصحاب نحت نزد حنفیه و موافقینشان حجت خجت هست در چه چی چیزی؟ در باقی گذاشتن آنچه که بوده است یا آنچه که هست بر آنچه که بوده است. مثلاً شخصی زنده مفقوده الان دیگه دانسته نمیشه کجاست خب میگن در این قسمت که این آقا رو زنده فرض کنین حجت برای باقی گذاشتنه آنچه که هست بر آنچه که بوده است. پس حجتون لعبقای ماکان علا ماکن. حجت هست برای ابقا کردن آنچه که بوده است برای آنچه که هست یا به زبان ساده ابقا کردن هر چیزی بر همون حالتی که بوده است و دفعی ما یخالفهو و همچنین حجت هست در دفع کردن چیزی که مخالف با ما کان باشه مخالفت مکنه چی که بوده است مثلا اگر یکی بیاد ادعا بکنه که این شخص مفقود مرده است میگه استصحاب اینجا حجته دفن میکنه این چیزو میشه میگیم نا آقا جوری نیست چکارش میکنه مگر این ثابت کنه مگر این چکار کنه پس استصحاب نزد حنفیه حجت هست برای ابقای ماکان. کان علی ماکان هرچک برای بر آنچه که بوده و حجت هست در دفع آنچه که مخالفت این استصحاب قبلی رو بکنه وهذا هو معنى قولهم ومعنى القول قولك في بكار بي بردك الاستصحاب حجة في الدفئ لا في الإثبات معنى شبين چيزيك تأيجا توضيهش داد وهذا وإن چيزيك تأيجا هو معنى قولهم معنى إن قولشان حست كي ألا نش بي خريب بجي إن توضيهك رد شود معنى إن قولي هس كدار كتب الاستصحاب حجة في الدفئ لا في الإثباتي استصحاب خجت هست در دفع کردن یعنی در دفع کردن آنچه که با مخالفت بکنه نه در اثبات چیز جدید نه در اثبات چی؟ مثلا شخص مفقود به عنوان مثال چون مثالی اینجا آورده ولی در کتاب کامل چی آورده در کتاب کاملش این مختصرش اینجا آوردم اینی که حنفیه میگن استصحاب حجت هست برای دفع لال الاثبات یا الاستصحاب حجتون فی الدفع لا في الاثبات معنیشون منظورشون چه هست؟ منظورشون این هست که استصحاب حجت هست بر باقی ماندن آنچه که بوده است بر آنچه که هست و حجت هست در دفعه آنچه که مخالفت بر آنچه که هست و بوده است بکنه تا زمانی که البته دلیلی بیاد و ثبوت کنه مخالفش رو اما حجت نیست دقت کنید اما استصحاب حجت نیست برای ثابت کردن که ثابت نبوده است اما استصحاب حجت نیست برای ثابت کردن امری که ثابت پس حجت است برای چیزی که ثابت بوده است ها؟ و دفع آن چه که مخالفتش رو بکند اما حجت نیست برای ثابت کردن چیزی که ثابت نبوده است این معنای سخنشون هست خب مثالی بیارد مثلا در, در شخص مفقود شخصی بیاد و مفقود میشه غائب میشه دانسته نمیشه که کجاست و دانسته نمیشه که آیا زنده است یا مرده است بگه با استصحاب حال ها بیگه احناف چی میگن طبق این قاعدهشون میگن حالش همونی هست که بوده است یعنی انسان زنده بوده است که رفته نه مگر اینکه دلیلی بیاد و اثبات بکنه که اینجا چه شده فوت کرده پس طبقه قاعده شون میگن اون چیزی که قبلا بوده است ثابت است یعنی زنده بودهлаш یعنی چیش مگر اینکه دلیلی بیاد و بگوید که چی شده است اون شخص فوت شده چهار شاهد بیاد آقا ما هبراهش بودی بی کرده خلاصه ثابت بشه پس استصحاب دلالت بر زندگی زنده بودنش میکنه و اگر یکی اومد ادعای وفاتش رو کرد این ادعاش چی میشه با این استصحاب دفع میشه پس استصحاب حجت هست در اثبات آنچه که ثابت بوده است و در دفع ادعایی که بشه و این ایرس برداد احلاف بگن ایرس نمیبره این آقا ازش کسی ایرس نمیبره چون اصل برینه چی بوده است زنده بوده لذا از کسی ایرس نمیبره اگر کسی هم ادعا کرد ادعاش پذیرفته نمیشه مگر اون دلیل که خوب داستانش جدائه اما برای اثبات حجت نیست اگر اومد و کسی دیگه از مورسینش مرد آی ارس میبره؟ احناف میگن نه ارس هم دیگه نمیبره چرا؟ چون استصحاب برای اثبات حجت نیست برای اینکه چیزی براش اثبات بشه خجت نیست چار؟ اصل برای ایشیک ای چیه؟ زنده ایه احنا برای چیزی که از قبل ثابته خجته برای ما بگو ای آقا زنده خجته چوشی قبلا چی بوده؟ ثابت بوده اما برای ما جدیدن یک چیزی بیا بری ثابتو کنی خجت نهند. هند ایده ما از دگری ارز بارد ارز نه متوجه بودید؟ بالی و انده غیر همکل حنابلتی و شافعیتی حجتون لدفع و للاثباتی اما در نزه غیر حنفیه مانند حملی ها و شافعی ها هم حجت هست برای دفع و هم حجت هست برای چی؟ برای اثبات یعنی حنابله و شافعیه میگوند این شخص عرص میبره این شخص اگر کسی از نزدیکانش فوت کرد چی کار میکنه؟ پدرش مثلا فوت کرد خوی اختلافه داره اختلافشون توضیح بده. پس این بزرگوارن میگن که ارز میبره چون حجت هست هم برای دفع هم برای اثبات اما احناف میگن حجت هست برای دفع اما حجت نیست برای اثبات حنفیه میگن بله اگر کسی ادعا کرد که مرده اینجا اصحابش برای این دفع این ادعا حجته و که کبیات ارسو اس ارس بردن از کسی دیگه ثابت بکنه ثابت نمیشه پس اینجا دقات کنید احناف میگن استصحاب در دفع حجت است ولی در اثبات حجت نیست اما حنابله و شافعیه میگن در دفع و برای اثبات چه است حجت است الاستصحاب فی الحقیقه لا یثبت لا يثبت حکمت جدیدا لیکن يستمر به الحکم السابق و الثابط بدلیله المعتبر بگه استصحاب در حقیقت حکم جدیدی رو ثابت نمی کند خوب دقت داشته باشید استصحاب در حقیقت حکم جدیدی رو ثابت نمی کند بلکه استمرار پیدا می به وسیله استصحاب همون حکمه قبلی که دلیل معتبر ثابت شده است اه؟ قبلان انسانی زنده بوده است پس استصحاب میگه که اون زنده بودنش هست ولی چیز جدیدی رو صابت فهو ایدن پس استصحاب در این صورت ليس فی ذاتی دلیلا فقهیا ولا مصدرا تستقا منه الاحکام بیگه در این سورت استصحاب فی ذاتی دلیل فقهی و مصدری که ازش احکام بشه نیست. وإنما هو فقط قرينة على بقاء الحكم السابق الذي أثبته دليله بل كيك قرينة هست برباقي مادن حكم قبلي كي ما دليلش صابت شده هست الاستصحاب لا يصار إليه إلا إن عدم وجود الدليل الخاص في حكم المسألة ولهذا فهو آخر مدار الفتوى بج استصحاب مش مراجئة مش مدار حداب نبودنة وجود دلیلی خاص در حکم مسئله به این خاطر آخرین مدار فتوه است هست؟ استصحاب هست سد و بیزت و هفت بین قواعد اون قواعدی که بر استصحاب بنا شده اند اون قواعدی که مبنی بر چه هستن؟ بر استصحاب و بالاستصحاب تقررد جبلت و قواعد و منها میگه بر استصحاب مجموعه از قوائد مقرر شدند از جمله یک الاصل فی الاشیای الاباحه اصل در اشیا چه هست؟ مباحبودنه اصل بر اشیا چیه؟ اصل بر اینه که اشیا مباحن اگر کسی غیر مباحبودن رو ادعا کرد با کنه؟ با دلیل بیاره ماله. دو الاصل براعت و ذمه اصل همچیه؟ برا بودن بری بودنه ذ مه بس هیچ کسی مشغول نیست بوش مشت... اشتغال نیست سه الي يقول لا لا به شک. يقيل هم با شک از بین ممتنی. کسی اگر وجود داشته الان شک میکنه که آیت داره یا نه طبق استصحاب میگی بله داره چون اصل بر اینه که چه داشته وجود داشته و الان شک و یقین هم با شک از بین ممتنی. اونی که وجود داشته یه چیزی یقینیه ولی اینی که آیا وضو داره یا نه چیه چیز چیه هست پس یقین با شک از بید نمیره خب اما اگر در این که وضوی داشت قبلن یا نه شک داشت خب خلاصه فهمتش شده الحمدلله عدلله تا این قسمت از کار تمام بوده و ماشوار از به بعد شیوه های استنباط احکام و قوائد دیروانی شیوه های چه استنباط نه به چیناه شیوه های استنباط احکام و قواعدی را از نم بدانی. شایع از دلیل تا در یک کتاب یا ارتباط ماوی دوارو، انشاالله، اوی دوارو، انشاالله روی از دلیل خوب کار کنی. یعنی این کتاب آخرین کتابی مامو کم شما انت مطالعات و تا الان رو کتاب، ب... الان دیگه کتابان فهمید، راحت. چطور؟ کاش که وقت بودی. الله صائب کری و ته اصولیت کری تا در مسائل عمیق بیوی آیا که اصول آلشنے عمیق بیویہ